اگر شراب خوری جرعی فشان برخواد از آن گناه که نفعی رسد به غیف چه با برو به هرچه تو داری بخور دریغ مخور که بی دریغ زند روزگار تیغ حلاک به خاک پای تو ای سر و ناز پرور من که روز واقع پاوام مگیرم از سر خواه چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه فری به مذهب همه کفر طریقت است امسا مهندس فلکی راه دیر شش جهتی چنان به بس که راه نیست زیر دیر مقاب فری به دختر رزم ترفه می‌زند راه است مبا تاب قیامت خراب تارم تا رمتا. به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی تو آوی احل دلت باد مونس دل پا